ار نام خدای یگانه مهربان سلام. یکوب گریم و ویلهلم گریم اولین محققانی بودند که به طور جدی به گردآوری افسانه‌های آمیانه آلمانی پرداختند. این دو برادر که در زمینه اساتیر مطالعات بسیار و چشمگیری ارائه داده بودند، هدف خودشان رو از بررسی افسانه های عامیانه، بازآفرینی مجدد اساطیر خدایان و پهلوانان قدیم ذکر کردند. برادران گریم افسانه ها رو بازمانده کهن می‌دانستند و تا معتقد بودند که با بررسی و بازسازی قصه ها، میش اساطیر و قهرمانان قدیمی رو از نو زنده کرد. برادران گریم منشأ قصه های پهلوانی رو اقوام هند و آلمان می‌دونستند. که با مهاجرت و ارتباطات فرهنگی میان اقوام این افسانهها ها به نقاط دیگر جهان هم انتقال پیدا کرده شنیدن و خوندن افسانهها ها همیشه جالب و لذت بخشن در برامی ازار افسان افثانه ای رو از مردمان سرزمین نیجریه براتون نقمی میکنم. به نام افثانی کلاه البگا برگرفته از کتاب گاو بیرنگ نویسندگان نینا یافه و استیو زایتلین با ترجمه از مشگان شیخی امیدوارم از شریدن این افثانی زیبا لذت ببرید روزی روزگاری دو کشاورز به نام‌های اولوفمی و اولوشگون در دهکدی کوچک در کشور نیجریه زندگی می‌کردند اولوفمی و اولوشگون با هم دیگه دوست و همسایه دیوار به دیوار بودند اونا هر روز با هم به مزرعه می‌رفتند و به کار کشاورزی مشغول می‌شدند اولوفمی و اولوشگون هر سال محصولات خودشون رو که سیب زمینی، انبه و بارهنگ بود جمع می کردن و برای فروش به بازار می می‌بردند. خلاصه اونا دوستان خوبی برای همدیگه بودن و بیشتر وقتشون رو با هم می‌گذروندن. اونا درباره هر کاری با هم مشورت می‌کردن. درباره نحوی کشت و کار، رفتن به مسافرت یا حتی چگونگی تربیت فرزندانشون همیشه اونا نظر همدیگر رو قبول میکردن. بعد از هر تصمیمگیری گیری این اولوشگون بود که سرش رو تکون می‌داد و آه آ اولوفامی تو چقدر عاقلی اونا با همدیگه پیمان بستن که هیچ وقت با هم دعوا نکنن روزها پی در پی می‌گذشت تا اینکه یه روز البگاه فرشته دانایی از اون بالا این دو دوست یعنی الوفمی و الوشگون رو دید و با خودش گفت به به چه دوستان خوبی چه زندگی آرومی دارن ولی زندگی که نباید همیشه مثل یه خط مستقیم باشه گاهی هم لازم پستی و بلندی داشته باشه زندگی باید همراه با مخالفت و یادگیری باشه این دو نفر باید به قدرت من پی ببرن اگه دوستی اونها از روی دانایی باشه همچنان پابرجا میمونه مثل یه درخت محکم اون وقت میتونن به اون تکیه بدن اما اگه مثل یه تبل تو خالی باشه هیچ ارزشی نداره باید کاری کنم تا بفهمم دوستی اولوفمی و اولوشگون مثل یه درخت محکمه یا مثل یه تبل تو خالی بعد ای ریخت و منتظر فرصت مناسب نشست تا اون روز معود فرا برسه روز بازار فرار سید. همیشه بازار در دو طرف جاده برپا شد. اولوفمی و الوشگون به جای همیشگیشون رفتن. اون دو دوست روبروی هم در دو طرف جاده ایستادن تا محصولاتشون رو بفروشند. مثل همیشه دوستان و همسایگان رو دیدن و با اونها سلام و احوالپرسی پرسی کردند. البگا که منتظر چون روزی بود لباس رنگارنگی پوشیده و چوبش رو برداشت. کلاهی روی سر گذاشت که یه طرفش قرمز و یه طرفش سیاه بود. صدفا و مهره کوچیکی هم دور تا دور لبی کلاه آویزون بود. وقتی راه میرفت اونا جرین, جرین صدا میکردن. بعد البگا به بازار رفت. همونطور که از بالای جاده به طرف بازار میومد به الوفمی و الوشگون رسید اون دو روبروی هم و دو طرف جاده به مردم نگاه میکردن و با همدیگه صحبت میکردن البگا در حالی که آواز میخوند و چوبش رو به زمین میزد از بین اون دوتا تا گذشت و رفت الوفمی به الوشگون گفت مردی رو که از اینجا گذشت دیدی؟ آواز قشنگی می‌خوند. بلوچگون گفت: بله، بله، اونو دیدم. آه، من هم از آوازش خوشم اومد. صدای قشنگ و خوبی داشت. بلوچومی گفت: حتما اون کلاه سیاهی رو هم که روی سرش بود دیدی، نه؟ بلوچگون با تعجب گفت: کلاه سیاه؟ ولی کلاه اون قرمز بود. حتما تو یه نفر دیگر رو میگی هلوفمی به دوستش خیلی شد گفت نه نه من همون کسی رو دیدم که تو دیدی اون چند لحظه قبل از اینجا گذشت اولوشگون گفت همون همون مردی که چوبش رو به زمین میزد و آواز میخوند خب دوست عزیز اون کلاهش قرمز بود نه یا؟ اولوفمی با کمی عصبانیت گفت باس که حرف خودت رو میزنی من میگم کلاه اون مرد سیاه بود من با چشمای خودم کلاهش رو دیدم سیاه بود سیاه سیاه گلوشگون هم تاکید کنم گفت خب منم با چشمای خودم اون رو دیدم کلاهش قرمز قرمز بود الوفه میگفت دوست من دلم نمیخواد با تو بیشتر از این رو بحث کنم ولی تو اشتباه میکنین چون کلاه اون به سیاهی زغال بود بعد به وسط جادو اومد و گفت بهتره به هر چیزی با دقت نگاه کنی چون اون کلاه قرمز نبود سیاه بود. هلوشگون که عصبانی شده بود با صدای بلند گفت یعنی یعنی تو میگی من اشتباه کردم اون کلاه قرمز بود به قرمزی توت فرنگی های توی این سبد. و خلاصه اونقدر یکی به دو کردن که بازار و هم ریخت. همه دور اونها حلقه زدند و به جره و گوش داده بعد از جروبث های زیاد بالاخره اللوفه میطاقت نیاورد و. دوستش اولو شگون رو هل داده گفت. حرفم رو میفهمی یا نه؟ هولو شگون گفت: "بله بله میفهمم ولی اون کلاه سیاد نبود قرمز بود. و در این مورد هیچ شکی ندارم. مثل اینه تو حرف منو نمیفهمی. و بعد دوستش رو محکم هل داد و با صدای بلند گفت. قرمز بود. و هم با صدای بالاتر گفت نه نه نه سیاه بود خلاصه کار اونها بالا گرفت سیاه بود قرمز بود نه سیاه بود نه نه قرمز بود همینجوری سیاه و قرمز رد و بدل می شود و یه دفعه اونا به طرف همدیگه هجوم بردن و با مشت به سر و صورت همدیگه زدن ادهی سعی کردن اونا رو از هم جدا کنن ولی هر لحظه وز بدتر می شود. اون دو با تمام قدرت فریاد می زدن <تصفيق> سیاه بود نه نه قرمز بود تو یه گویی؟ نه تو یه گویی؟ نه نه بهتر فکری باله چشارت کنی اونا رنگ قرمز رو از سیاه تشخیص نمیدن. خلاصه دعوا همچنان ادامه داشتند این که یه دفعه صدای آوازی شنیده شد صدای آواز نزدیک و نزدیکتر میشد با اینکه دعوا ادامه داشت ولی مردم به طرف صدا برگشتند یه دفعه پیرمردی جمعیت رو شکافت و جلوی روی اولوفمی و علشگون ایستاد و گفت دعوا کافیه حالا به حرفای من خوب گوش کنی اولوفمی و علشگون با تعجب به پیرمرد نگاه کردن و منتظر بودند تا ببینن پیرمرد چه حرفی برای اونا داره پیرمرد از اولوفمی پرسید تو تو چند سالی که با این مرد دوستی هم؟ اولوفمی نگاهی به اولوشگون انداخت و گفت نمیدونم ولی خب سالهای زیادی که با ن دوست همساگم پیرمرد گفت من میدونم که شما هر دو برای هم دوسته خوبی بوده و مثل دو تا برادر با هم دیگه زندگی کردین حالا چرا میخوایین این دوستی رو به هم بزنید اولوفمی و اولوشگون نگاهی به هم انداختن و چیزی نگفتن پیرمرد اونا گفت حیف نیست این دوستی قربانی یه چیزی بیارزش بشه؟ آه؟ بذارین من چیزی رو به شما نشون جمعیت جمعیتم کنجکاف شده بودن که پیرمرد میخواد چیکار کنه پیرمرد خیلی آروم چرخید. اون قسمت سیاه کلاه بعد قسمت قرمز اون دیده شد. اروفمی از جا بلند شد و ایستاد. اروشگون هم ایستاد و به مرد خیره شد. پیرمرد به نرمی و سبکی یه با سرعت می چرخید. طوری که رنگهای سیاه و قرمز پشت سر هم دیده می پیرمرد همونطور که می چرخید در یه لحظه از نظرها نابدیک شد. الوفمی و الوشگون با چشمای حیرت زده خودشون به دنبال پیرمرد این طرف و اون طرف رو برنداز کردند ولی اثری از پیرمرد نبود که نبود انگاری آب شده بود و توی زمین فرو رفته بود کم کم جمعیت هم پراکنده شدن و تنها الوفمی و الوشگون شرمنده موندند وسط بازار. فمی و علوشگون در حالی که سخت پشیمون و شرمنده بودند به هم نزدیک شدند. ولوفمی گفت: دوست من چه اشتباهی کردیم؟ من من فقط یه طرف کلاه رو دیده بودم. ولوشگون خاک روی شونه دوستش رو پاک کرد و گفت: آره منم همینطور. یعنی کلاه رو فقط از همون سمتی که ایستاده بودم دیدم. ما هر دو قبل از گفتن رنگ کلاه و مرد باید هر دو طرف کلاه رو میدیدیم. دیدیم. میگفت درسته ولی خب بیا گذشته ها رو فراموش کنیم. ما باز هم میتونیم دوستای خوبی برای هم باشیم. بلوشگون با خوشحالی گفت، البته که میتونیم باز هم برای هم دوستای خوبی باشیم، با هم مشورت کنیم، با هم توی مزرعه کار کنیم و با هم محصولات اون رو به بازار بیاریم. بعد با هم دست دادن و دوباره مشغول فروش محصولاتشون شدن. خروب اون روز مثل همیشه هر دوی اونها با هم به خونه برگشتن، اما تجربه بزرگی به دست آورده بودن. اونا یاد گرفته بودن که قبل از خراب کردن دوستی یا از دست دادن یه روز فروش خوب در بازار باید کمی اون طرفتر رو هم نگاه کنن بله اولوفمی و اولوشگون سالهای سال در همسایگی هم زندگی کردند و برای هم دوستای خوبی بودن و قدر دوستیشون رو خوب می دونستن. دوستی اونها درست مثل یه درخت مکم بود افسانه کلاه اولبگاه رو از مردمان سرزمین نیجریه براتون نقل کردم برگرفت از کتاب گاو بیرنگ نویسندگان مینا یافه و استیو زایتلین با ترجمه از مجگان شیخی افسانه ها میتونن سرچشمه های ناب خلاقیت های هنری و موضوع تئاتر سینما و انیمیشن هنرمندان باشند مگه این نیست که فیلم موفقی مثل هریپاتر و ارباب حلقه ها از بنمایی بعضی از افسانه‌های مردمی مردمانان سرزمین ها برگرفته شدن؟ هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت صبور ویراستار بهار گییان اجرا مهران دوستی صداوردار اکبر نکائین تیه كننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهای دیگر بدرود